به هم رسید که نکته خیلی مهمی رو خدمتون ارز کنم در باره هیبنوتیز و در باره کردن مهارت های شما در اون و اون نکته اینه که اگه میخواید توی هیبنوتیز خیلی موفق بشید اون رو دم دستی تر و راحت تر و ساده کنید بر خودتون خیلی ها انواع اقسام دیت ها رو به هیبنوتیز دارن یعنی مثلا میگن واقعا هیبنوتیز چه وضعیت اصلا رامیزیه واقعا مثلا من برم تو وضعیت هیبنوتیز و بعد بیرون نیام ازش و همونطور که قبلا هم در ابتدای دوره یه اشاراتی کردیم اصولا هیبنوتیز بیه چیز روزمره و رایجه یعنی ترین چیزیه که شاید تابال هیچ چیزی به اندازه هیبنوتیز برای شما رایج مورد استفاده نبوده فقط مشکل شما اینه که هر بار که از هیپنوتیزم استفاده کردید و هر روز که دائما دارید از هیپنوتیزم استفاده میکنید شما نمیدونید چجوری دارید از اون استفاده میکنید و چجوری دارید وارد تونل‌های واقعیت میشید چیزها رو جور خاصی میبینید یه جورایی دچار یه سری ها و خطای دیدها میشید توی قضاوت دیگران توی قضاوت خودتون و توی ابعاد دیگه زندگی بنابراین هیپنوتیزم رو برای خودتون خیلی ساده کنید آگاه باشید که شما هر لحظه توی یک تونل واقعیت و توی یک وضعیت هیبنوتیزمی هستید. هیبنوتیز یه چیز عجیب غریبه، یا ترسناک نیست، یه معما نیست. بسیار چیز رایج و دم دستیه و هر لحظه از زندگیتون شما دارید از اون استفاده میکنید. پس تغییر نگاهتون به هیبنوتیزم، این تغییر نگاهی که خدمتون هست شد، یکی از بنیادی ترین کارهاییه که باید حتما انجام بدید.